همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند. چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم، به تیره گفت مسلمان گرین این من درست نیست، خدا یا جهود میرانم یهود گفت به تورات میخورم سوگند وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خود گمان نبرد هیچکس کس که نادانم